عوض بالله سمیع العلیم من الشیطان اللین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین السلام و السلام علی و نعواله تاهرین خدمت عزیزان دانشوی خودم عرض سلام دارم صبح خیر عرض میکنیم انشاءالله که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 کنایه در لغت مستره از فعل کنا یک نو, کنا یک نو، یا کنا یک نی. یعنی هم ناقص واوی و هم ناقص یایی رسیده کنا یک نو مثل دعاید او و کنا یک نی مثل رما یرمی مستر کنایت تو لغت به معنای است کنا یعنی سطر یعنی پوشاند کنایه به معنای پوشاندن تو یعنی سترتو. تو خب این معنای لغویش معنای لغوی کنایه رو فهمید خب این برای ما خیلی جایگانی نداره چیزی یاد گرفتیم اما اصل بحث اینه که ما کنایه اصطلاحی که کنایه در بلاغت اون رو یاد بگیریم. خب در لغت کنایه به معنای پوشاندن بود. اما نگاه کنید تو کتاب نوشته علی کنایه. علی کنایه علفلام داره تعریف یعنی اون کنایهی که نزد بلاغیها مورد نظره. کنایه اصطلاحی بهش میگن. ما مجاز رو گفتیم استعمال لفظ در غیر موضوع خودش با وجود علاقه و قرینه مجاز استعمال لفظ در غیر موضوع خودش با وجود علاقه و قرینه یادتون باشه قرینرم همش میخوندیم قرینتن، مانعتن ان قرینه ای که مانع میشه از اراده معنای حقیقی قرینه ای که مانع میشه از اراده معنای حقیقی که من گفتم که به قرینه مجاز میگن قرینه مانعه یا قرینه صارفه صارفه با ساد به معنای من کننده جلوگیری کننده درینه قرینه مانعه یا صارفه میگن که خودتونم دیدید که قرینه مانعتن انعراضت معنن حقیقی یا معنل اصلی اما مجاز چیه؟ مجاز عبارت هست, هست. ترجمه یعنی مینویسید تعریفش رو بعد من توضیح که بدم میفهمید خیلی سختیست ذکر ملزوم ذکر ملزوم و اراده لازم آن و اراده لازم آن با وجود فرینه کاشفه با وجود قرینه کاشفه خب اگه قرینه کاشفه رو توضیح بدم، مجاز رو میفرد اولا ببینید مجاز هم کنا... کنایه هم یه نوع مجازه چون میگیم ذکر ملزوم اراده لازم خب یعنی ملزوم رو ذکر کردیم لازم اون رو اراده کردیم مثل مثلا خورشید حالا میخوام لازم و ملزوم رو بفهمید این ربط به, به کنایه نداره مثل خورشید ملزومه لازمه خورشید چیه نوره آه؟ حرارت، ها روشنایی حرارت اینها از لوازم خورشید خورشید ملزومه خب پس ذکر ملزوم میکنیم اراده لازمی این خودش علاقه است مجازم هم هست چون یه چیزی رو ذکر میکن یه چیزی رو اراده میکنم اما با وجود قرینه کاشفه قرینه کاشفه چیه؟ قرینه کاشفه قرینه است که همین فقط فرق کنایه با مجاز در همینه مجاز قرینش مانع است کنایه قرینش کاشف است همین هیچ فرق دیگه ندارم بلا اونجا هم شما لفظ رو در غیر موضوع در خودش بکار بردید علاقه هم داره هر دوتا علاقه نباشه نمیشه فقط فرقش در قرینه است در مجاز قرینه در مجاز قرینه مانعه صارف است در کنایه قرینه کاشف است قرینه کاشفه چیست قرینه ای که به ما میگوید که این لفظ در غیر موضوع له خودش به کار رفته است ولی ولی مانع از اراده معنای حقیقی یا اصلی نیست فقط چشف معنای غیر موضوع له و مجازی را می کند. درست شد؟ غیر معنای موضوع و مجازی رو میکنه پا چیه میگه این لفظ در غیر موضوع خودش به کار رفته حواست باشه درست شد این میکنه غیر موضوع الله هم که ملزوم بوده در لازم به کار رفته اینو به ما میگه. اما به ما جلوگیری نمیکنه که اراده معنای حقیقی رو هم نکنیم اون نیست. اونجا که مگفتیم گفتیم قرینة مانعت من ارادت حقیقی الحقیقی اینجا مع قرینة کاشفت عن المعنی المجاز معنای معن میکنه اونو باید بفهمی یعنی معنای مجازی که کشف میکنه اونو باید بفهمی اما جلوی اراده معنای حقیقی رو نمییر ولی تو مجاز شما تو وقتی میگفتید رعی تو عصدن یحمل و سلاح این یحمل و سلاح میکنم این عصد رجل شجاعه شما نمیتونستید از این عصد شیر درنده اراده کنید غلط بود. چون شما, شما شیر ردیده بودید گرفته چی هست شد؟ پس این یا مثلا جعل و عصابه هم فیازانه هم این جعل و فیازانه هم میکنم عصابه به معنی انامله سر انگشتان. شما نمیتونستید دیگه کل بود. اصلا اونو نمی اراده که مانه اما اینجا اینطور نیست حالا نگاه کنید خود کنایه رو تعریفش رو تی کتاب نوشته الکنایتو لفظون اوریده ال لفظون اطلبه لفظی که استعمال شده و اوریده بهی لازم و معنا و اراده شده به اون لفظ لازم معناش یعنی معنای لازم اراده شد خب معمولو گفتم دیگه گفتم ذکر ملزوم و اراده لازم با چهارت کلمه اینه گفتیم لفظی که استعمال شده و اراده شده با آن لفظ معنای لازمش این جواز ارادت زالکل معنای یعنی چی؟ یعنی با وجود غلینه کاشفه همراه اینکه که جایز از شما اراده کنید اون معنای اصلی رو اون معنای رو خب همراه این که جایز از اراده کنید معنای اصلی رو یعنی غرینهش قرینه کاشف است. پس من با سه تا کلمه گفتیم، چهار تا کلمه گفتیم گفتیم ذکر ملزوم و اراده لازم با وجود غرینه کاشفه. همین تعریفی که ایشون گفت. پس لفظ اطلقه و, و اریده بهی لازم و معناه لفظی که استعمال شده و اراده شده به اون من لازم معناش مع جواز ارادت ظالک مع حالا ما برای خاطر اینکه شما بتونید موارد رو متوجه بشید یکی دو تا باید مثال بزنیم بعد تو مثال هایی که زدیم شما متوجه میشید چون تعریف و فهمیدید الان متوجه اون میشید و تقسیم کنایه میکنیم و نکاتی رو که داریم بیان میکنیم هی به جزواتون اضافه کنیم ببینید الان مثال اول کتاب نگاه کنی مثال اول یه نفری در مورد معشوق خودش محبوب خودش میگه میگه فلانتو فلانتو یعنی مثلا هندون فلانخانه محبوبه او بعیدتو محول قرت بعیده یعنی دور است محوا یعنی محل افتادن یعنی مثبت محل سقوط قرط هم یعنی گوشواره الفلام داره الفلام عوض از مزاکنه لایه یعنی قرطه یعنی گوشواره او القرط یعنی گوشواره او میگه فلان خانوم ترجمه شیم دور است. محل افتادن گوشوارش محل سقوط و افتادن گوشوارش دوره یعنی چی؟ گوشواره ها رو در قدیم به این شکل گوشواره مثل علنگو که اندازه داره مثلا علنگو شماره فلا دست هر کسی یکی نوعی میخوره بستگی به اون قطر دست داره گوشواره هم همینطور بوده گوشواره ها را از این نرمه گوش سوراخ میکردند. آویزون میکردند تا روی شونه. حالا یا به شکل هرقه هرقه بود، یا به شکل بافت بود، هر شکلی بود. این گوشواره ها اندازش این بود که گوشواره بیاد تا روی قول خودمون شونه. اگر روی شونه وای میستاد، این گوشواره از خودمون اندازه گوشه این بود. کوتاه بود نمی شد می رو شونش دراز باشد مثل که یه شلوار بلند پوشیده باشه که پاچه بخواد بزنه باده. پس اندازه داشت میگه اگه بخوای اینو حساب کنیم میگه فلان خانم محبوبه من محل افتادن گوشوارش خیلی دوره یعنی از نرمه گوشش تا روی شونش فاصله زیادیه محل افتادن گوشوارش دور. خب این ملزوم لازمه این که فاصله بین نرمه گوش و روی شونه زیاد باشه لازمه این چیه لازمش اینه که اون گردن بلندی داشته داشت. گردنش چی باشه فراز باشه گردن ای داشته گردن بلندی داشته که یکی از اسباب زیباییه درست پس ایشون میخواسته اون لازم رو در مورد معشوقش بگه که معشوق من گردن فراز داره با قول خودمون گردن بلندی داره از اسباب زیبایی این زیبایی رو داره اینو می‌خواسته بگه اینو باید بفهمی از این عبارت اینو از این عبارت میفهمی درست شد؟ اما اما اگر بفهمی که اون گوشواره داره گوشواره‌اش هم بلند اون ملزوم رو همونی که تو لفظ ذکر اون اونو به فهمی اشکالی یعنی حتی اینطوری بگی فلانی گردن خیلی بلندی داره گوشواره خیلی بلندی داره منظوری نه که منظوری نه یعنی منظوری نه که اون گردن فرازی داره و زیبایی این نوع در او هست این الان کنایه است. شده شد ای نه؟ این کنایه است. مثل اینکه میگیم فرض بفرمایید که فلانی دستش بازه یا فلانی دستش بسته است. خب فلانی دستش بازه یعنی چی؟ یعنی میتونه کار را انجام بده. این برو کشه فلانی دستش بازه این دسته یه نفر باز باشه لازمش چیه؟ لازمش اینه که بتونه کارها رو انجام بده یه کاری رو انجام بده قدرت داشت باشه پس این قدرت داشتن لازمشه. اینو باید بفهمی. دستش بازه. یعنی چی؟ یعنی کاری ازش بر نمیده نمیتونه کاری رو آجزه. این بودن باید بفهم حالا اگر ازش اون معنای اصلی رو هم بفهمید که این دستش بسته نیست دستش بازه اون معنا رو بفهمی فهمیدی مشکلی با تو اون ندارد این هم دوتا کنایه شده ما خود قرآن دارد میگه در مورد خدا یهودی ها میگن یدالله مقلوله دست خدا بسته است منظورشون اینه که خدا نمیدونه انگار کمک کنه. هی میگه بیایید به خدا کمک کن بعد خدا میگه بلی یداله هم بشینید سر جاتو. خدا هر دو دستش بازه. منظور خدا دست که نداری. منظور یعنی این که بگید خداوند تعالی تواناست قدرتمند اینو باید بفهمیدیم. پس کنایه ذکر ملزومه و اراده لازمه با وجود قرینه کاشفه. قاعده کاشفم یعنی اینکه کشف معنای مجازی یعنی اون لازم رو میکنه غیر موضوعی ولی مانع از اراده معنای حقیقی اصلی معنای موضوع له نیست این تا اینجا نگاه کنید ما یه تفسیری بگیم بینیمیستید گاهی گاهی در کنایات که قرینه کاشفه است و مانع از اراده معنای حقیقی اصلی موضوع له؟ نیست ولی ولی اراده معنای اصلی اراده معنای اصلی ممتنع است و جایز نیست ولی این قسم از اقسام کنایه است زیرا از جهت قرینه که کاشفه است فرقی نکرده است ولی ولی موضوع موضوع کنایه به ای است که به ای است که اراده معناع حقیقی اراده معنای حقییری ممتع گردید است اراده معنای حقیقی ممتنع گردیده است یعنی مانع از جهت استعمال کنایی استعمال کنایی نیست بلکه مانع از خارج از کنایه می باشد کنایه می حالا یه مثال من بزنم از یه مثال زدم ها مثل همین الله مقلوله که تو قرآن داریم کنایه است دیگه ید الله تن باقی بعد خدا میگه بل یده مبسوطتان بلکه دو دست خدا بازه حالا شما اگر این دست بسته دست باز رو در مورد زید من شما به کار ببریم بگیم برو پیش فلانی دستش بازه یا یکی بگه نه بارو پیش فلانی دستش بسته هست شما میفهمید دستش بازه یعنی قدرت داره میتونه دستش بسته است یعنی آجزه نمیتونه این میفهمی باید بفهمی. اما اگر بفهمی که دستش بازه دستش بسته است، ها این معنای اصلی رو هم بفهمیش کاری نداره میده چرا؟ چرا چون اون چون او آقا دوتا دست داره دیگه میتونه باز باشه میتونه بسته باشه باز باشه یعنی میتونه کاری را انجام بده بسته باشه یعنی نمیتونه درست شد؟ چون دست داره اما در مورد خدا که به کار میره میگیم یداهو مبسوطتان یا ید الله دست خدا بسته است دست خدا بازه در مورد خدا امکان نداره دیگه ما بگیم اون معنای حقیقی را میتونی تصور کنی که خدا دستی داره باز دستی داره بسته است نمیشه این چرا چون خداوند جسم نیست خداوند بگید جسم نیست که دارای دست باشه اینجا چی مانع شد ما همون کنایه رو به کار بردیم بودیم دست فلانی بازه دست فلانی بسته است در مورد فلان کس در خدا هم همین کنایه رو به کار بردیم اما اینجا میگیم نمیشه معنای حقیقی رو شما اراده کنید. اینجا کنایه نبوده که مانع شده بلکه موضوع کنایه که خداونده این امکان رو از ما گرفته درست شد؟ این هم نکته ایست اساسی که باید تو تون بگید داشته باشید که گاهی اوقات حقیقی، ها؟ امکانش نیست این نه به جهت کنایه است بلکه به جهت موضوعیه که کنایه توش حالا من یه مثال بزنم باز تا مثال دیگه رو بخونم ببینید مثلا ما اینطوری میگیم مثلا تو تاریخ هم شما خوندید میگه مثلا رضا شاه از سال 1303 تا 1320 بر تخت نشست نژاد شاد علیه ما علی از سال 1303 تا 1320 بر تخت خب این بر تخت نشست یعنی چی؟ این یعنی اینکه حکومت کرد، یعنی اینکه سلطنت کرد. او اینه منش دیگه پادشاهی کرد. این معنا رو باید بفهمی. یعنی نمی‌تونی فقط اینه بفهمی که یه تخت بوده این 17 سال روش نشسته. نمیشه بفهمید. این غلطه. این معنای ملزومه. اما لازمش اینه که سلطنت کرده دیگ تخت نشسته فرمان روایی کرده، دستور داده. اینو باید بفهمی. این معنای حقیقی به اون معنای مجازی لازم، ما رو به جون رو اون تخت پادشاهی نشستن لازمش اینه که دستور بده. پادشاهی بود، سلطنت حالا آیا میشه اراده کرد که تخت پادشاهی بوده این روش میشسته؟ میشه؟ بله چون این آدم میتونه روی تختی بشینه و دستور بود که تختی داشتن پادشاهان برش مینشستن و از اونجا امورات خودشون رو فرمان روایی بکن میشه چون آدمه میتونه برد اما شما همین رو میبینید تو خود قرآنم میگه الرحمان و علل عرش الرحمن، این خدا علال عرش یعنی علا عرشهی علفنا مازم علال عرش استوا استوا یعنی استدر نشست یای یعنی قرآن چی میگه؟ الرحمن رحمان و علال عرشه استوا خدا بر عریکه قدرت خودش بر عرش خودش نشسته است خدا اینطور نبوده که آسمون زمین آفریده رفته کنار دیگه الان ما نمیدونیم کجاست چی شد؟ یه آسمان زمینم داره کار خودشو میکنه. مثل یه کسی که یه ساعتی رو ساخته الان دیگه ما نمیدونیم اون حسیل نیست. اما اون ساعته داره کار خودشو میکنه. این طوری نیست. کلیومن هوفیشن. خدا هر لحظه داره همورات عالم رو میگرد. اررحمان علاله هر است. خداوند بر عریقه قدرت خودش سواره. بر عریقه قدرت خودش نشسته است. بر عرش خود نشسته است این لازمش چیه بله اچه خود نشسته یعنی داره راستوریست میکنه امور در این کارها رو اداره میکنه اختیارات به دست اوست از این باید بفهمید. اما بخوای بفهمی که خدا تختی داره و روش نشسته و داره به که دستور میده و اونا میانند این رد چیزی وجود نداره چون خداوند جسم نیست تخت و نشستن و اینها برای اون متصور اینجا چون خداست نشد چند تا مثال زدم ها حالا نگاه کنید درست شد کنایه مخوام اون بحث تموم شد کنایه تعریفش تموم شد و مبحث رو گفت کنایه به سه دسته تفصیل میشه کنایه به سه دسته تفصیل میشه کنایه صفت کنایه موسوف کنایه نسبت کنایه چند راست سه صفت نسبت چرا ما گفتیم صفت موصوف نسبت؟ چون معمولا اونی که بیشتر استعمال داره جلو تر زکر میبان صفت کنایاتش خیلی بیشتر از مصوفه موصوف بیشتر از نسبت. نه این که این کمه ها یعنی مثلا اگه صد تا کنایه داریم 50 تاش از نوع صفته سی تاش از نوع مصوفه 20 تاش از نوع. نسبت. طریقه استعمالشون اینطوری این, این تا اینجا چند شد؟ سه قسم صفت موسوف نسبت، تبصیره منظور از صفت و موصوف در اینجا صفت و موسوف لغویست صفت و موسوف لغویست نه صفت و موصوف اصطلاحی و نحوی که شما تو نحو خوندید منظور از صفت و موصوف اینجا صفت و موصوف لغویست در لغت مثلا تو دو لغت شد صفت قدرت قدرت صفته شخصی که قدرت داره میشه موصوف زید میشه موصوف درست شد این رو داره سفید سفیدی میشه صفت پنبه میشه درست شده نه شیرین بودن میشه صفت خرما میشه موصوف یعنی صفت و موصوف صفت اون عارضی است که در اون هست موصوف اون جوهریه که این صفت توشه و ذاتی که این صفت دوی. منظور صفت و موصوف لغوی است. حماقت میشه صفت، فلان کس که نمیفهمه میشه موصوف. فکر می کنم که صفت و مصوف در اینجا صفت و موصوف بگید لغوی نه منظور صفت و موصوف اصطلاحی. حالا نگاه کنید. قایه 27 رو میگه تنقص ملکنایتو. کنایه تقسیم میشه. به اعتبار مکنیگه به اعتبار اون چیزی که کنایه ازش کردی با در نظر گرفتن اون مکنیگان ان کنایه شده از او تنقصه بل کنایه تو سلاست اقصام سفرس فا ان ان زیرا مکنیگان ان قد یکون و صفت گاهی اوقات صفت هم. و قد یکون گای اوقات مصوفه و قد یکون و نسبت اوقات نسبت هم. حالا صفت و موصوف رو من گفتم که منظور صفت و مصوف لغوی است نسبت رو هم در متن که برسیم برای شما بیان خواهم براز شد حالا بیایید سر امثله توی مثالها شما نگاه میکنید چون سر قسم مثال زده الان میتونید تقسیم بفهمید چرا؟ قاعدتا قسم اولش کنایه صفته قسم دومش کنایه مصوفه قسم سومش کنایه بگید نسبت. یعنی یک و دو کنایه صفته سه و چار کنایه مصوفه پنج کنایه نصفتی که خودش دوتا نصف راست الان تو اون مثال اول که فلانت و بعیدت و محول غرد که قالت تقول العرب عرب اینطوری در مورد محبوب و خودشون میگن که فلان, تو فلان خانم بعیدت و محول قرد محل آمیخته شدن و افتادن گوشوارش دوره اینطوری میگن این عرب ها درست شد این کنایه از چی بود؟ کنایه از بلند بودن گردن فراز بودن گردن این فرازی گردن گردن فراز بودن صفت دیگه کنایه صفت شو. ذکر ملزوم کرده گوشواره بلند ها لازمش چی میشه بگید گردن فراز فراز گردن بودن این میشه کنایه صفت حالا دوباری رو نگاه کنید قالت الخنسا خنسا یک شاعره است عرب که هم در جاهلیت زندگی کرده هم در اسلام سند بالایی هم داشته یه برادری داشته ناتنی که تو جاهلیت کشته شده برای او شعرهایی گفته مرسیه های. اصلا مشهور با اون مرسیه هاشه خنسا پاین نگاه کنید هیت و ماظر بنت و عمره لها منزلتون رفیعتون فشیر و قد اشتهرت به رساق اخیها سخرن به مرسیه داداشش که گفته بوده که اسمش سخره اصلمت معقومه ها با قوم خودش که مسلمان شدن هم مسلمان شد و ماتت سنت عربه و و خمسین. سال پنجه و هم فوت کرده یعنی خیلی زیاد در دوران خلافت معاویه فوت کرد. چند سال قبل از آمدن یزید خب این در مورد داداشش میگه قالت الخنسا فی ها سخرن در مورد داداشش سخر سخر بدل است از اخیها قضا خوندیم که اخیها سخره میگه طویل و نجات سه تا کنایه توشه توی دیگه طویل و نجات خبر مبتدا محضوبه یعنی از سخره یعنی آقای سخر طویل و نجات. خب رفیعال اماد خب کثیرٌ رماد ایزا ما شتا ما بعد از ایزا زائده شتا یعنی دخل خلف شتا وارد در زمستون شد مثل ما که الان وارد در زمستون شدیم درست شد میگیم شتا از یعنی ذ وارد در زمستون شد ایزا ما شتا این ایزا متعلق به کثیرن یعنی هی نشتا موقعی که وارد زمستون شد نجاد،, نجاد قلاف شمشیره اون محمل شمشیر اون چیزی که قلاف و اون قسمت با خود خودمون شمشیر روش بسته میشه و اونش میگن نجاد محمل میگه فلانی قلاف شمشیرش یعنی اون جایگاه شمشیرش که شمشیر توش می‌رفته روی یه چیز چرمی بوده به کمر بسته می‌شد این کلاف بلنده مهمل بلندی داره خب کلاف شمشیرش بلنده یعنی چی قمیته میبنه داره. فلانی غلاف شمشیرش خوش غلاف شم... شمشیرش بلنده شمشیرش شمشیر که تو اون گذاشته بلنده دیگه چون قلاف رو اندازه شمشیر درست کرده. خلاف شمشیرش نگاه کنی اینیم مثلا یه متر و ده سانت خب لازمه این که چون شمشیر به کمر میبستن دیگه خلاف شمشیر بلند باشه لازمشیه چیه این قدش بلند باشه چون اگر قدش مثلا دو متر باشه میتونه شمشیری با یه متر و ده سانت به خلاف برد به مندر کمرش بلکه اگه قدش مثلا یک کش شهست باشه یک و پنجه باشه با اون رو ببنده به کمرش باید ببنده به گردنش تا نمیشه که اون مجموع روزه شمشیر کتاه دریبه پس اینکه قلافش هم شمشیرش بلنده یعنی قدش بلنده باید بلند قد بودن اون رو بفهم خب این تا اینجا پس این کنایه شد برای بلندقد بودن حالا بلندقد بودن فقط منظور این خنسا بوده یعنی اینکه داداش م درازه فقط همین میخواسته بگه نه بلکه بلندقد بودن خودش باز ملزومه بلندقد بودن خودش ملزومه لازمه بلندقد بودن چیه؟ شجاعت چون تو ذهن مردم اینه که هر کسی که قد بلندی داره این شجاعت بیشتری داره لذا شما تمام این کسانی رو که جانفشانی میکنن جز قهرمانان ملی تمام اح... اقوام تو همه جا هستن تو حال رمانی بخوانید، میبینید اون قهرمان رو یکی از چیزهایی که براش ارمان میکنن میگن رشیده مثل حضرت عباس هم دید میگن رشید. بوده ولی خود همین رشید بودن درست شد رشادت جزئه بگید لازمه این بقول خودمون اون شجاعت پس ما از بلند بودن قلاف شمشیر به چی میرسیم؟ به بلند بودن قد از بلند بودن قد به چی میرسیم؟ به شجاعت پس خانم خانسا مخواسته بگید داداشت من شجاعت یک ببین یه واسطه خوردار اینجا کنایه یه واسطه خود ما از طویل و رسیدیم به طویل القامه بعد از طویل القامه رسیدیم به شجاع، شجاعت شجاعتم صفت بیایم دومی رفیع ال اماد یعنی ستون خیمه یعنی ستون خیمش بلنده ستون خیمهش بلنده خب ستون خیمهش بلنده یعنی چی؟ یعنی شما اگه دیده باشید این خیمه که مثلا نسل میکنن نمادین برای عزیز فعب عبدالله خیمه های کچکتر میکنن یه خیمه بزرگ نصب میکنن که یه ستون خیلی بلندی داره خیمه رو بلند میگه داشته این میدن این خیمه خود عزیز فعب عبدالله چرا خیمه رئیس بلند بوده چون خوب هم نشون اون میده که اونجا است بعد اونجا رفت و آمد زیاده جلسات تشکیل میشه میشینن ها خیمه بلند خیمه رئیس بلند چط پس این رفیع اماد خیمه ستون خیمهش بلند است یعنی رئیس است ازش به رئیس بودن میرسیم واسطه هم نداد مستقیم میرسیم به رئیس بودن شد این هم داشته بود. خب رئیس بودن هم باز صفت دیگه ریاست پس اون رسیدیم به شجاعت با یه واسطه این رسیدیم به ریاست با یه واسطه کسی رماد خاکستر خونش زیاد چون قدیم اینطوری بوده پخت و پز میکردن بعد وقتی پخت و پز زیر این ها پر خاکستر میشد این شباره میسوزوندن زیرش پر خاکستر میشد خاکسترها رو میریختن بیرون مثل ما که زباله رو میزونیم بیرون خونه میبریم اونا میریختن بیرون خونه خاکستر زیادی یه ادهی میامدنی رو جمع میکردن میبردن برای ساختن تنور و ساختن بعضی از ملات هایی که تو ساختمون به کار میگردن به کار میگرد. خب. میگه خاکستر خونش زیاده تو زمستون. چرا میگه تو زمستون موقعی که باید زبستون میشه؟ چون تو تابستون اینا عادت داشتند که با قول خودمون تازه خوری میکردن. لامی افتدن میرفتن. می رو پیدا میکردن میخوردن. بعضی چیزهای دیگه ای رو که از گیاهان ها و غیره بوده میخوردم میوه های زیادی وجود داشته خرما بوده زندگیشون رو می گردن خیلی مواغه میدیاصلن پخت و قذ نمیکردن چون گرما بود. زمستون دیگه در واقع بعد از ذخیره میخوردن پس هم میگه وقتی چیک که متونت بود فکر زمستونت بود زمستون بعد یه مقداری از جیب میخوردن. نظام میگه این تو زمستون اواجاقش به راهه. خاکسترش زیاد خب ببینید خاکسترش زیاد است از این به چی میرسیم به اینکه پخت و پز زیاد دارد کسیت و تبخ خب پخت و پز زیاد داره منظورش نیست که این غذاخوری داره اصلا نمیخواد اینه تو بگه داداش من رستوران داره منظورش نیست که کسرت تحبخ داره منظورش اینه یعنی که کسرت آکلین داره از اینکه کسرت آکلین داره منظورش این نیستش که زن و زیاده نمیدونم ایالواره منظورش اینه که مهمان زیاده کسرت زویف. از اینکه کسرت زیوف داره منظورش چیه؟ یعنی اینکه مزیافه یعنی مهمان داره یعنی با کرده. و کرمه. از کسی و رماد میخواد بگه داداش من جود و کرم داره. بس گفت داداش من شجاعت داره. داداش من ریاست داره. داداش من جود و کرم داره. در اولی ما با یه واسطه رسیدیم. از طویل و رسیدیم به طول قامت. از طول قامت به شجاعت. در دومی واسطه نخورد. یه ضرب از طویل و نماد. جر... رفی و اومدیم به ریاست. در سومی واسطه بیشتر شد یعنی از کسرت رماد اومدیم به کسرت تبخ از کسرت تبخ اومدیم به کسرت آکلین از کسرت آکلین اومدیم به کسرت زیوف از کسرت زیوف اومدیم به جود و کرم شد؟ یعنی وقتی دقت میکنیم این, این مسائل شد همه این ستا هم کنایه بگید صفت چون صفت شجاعت صفت ریاست صفت جود و کلم همه اینها کنایه صفت حالا یه مطلب این رو میخوام اعرض بکنم. ببینید این خانم خنسا این کنایه هایی که به کار برده در مورد داداشش، ما معنای لازم رو باید بفهمیم یعنی شجاعت و ریاست و جود و کلم این رو بفهم اینا اگر فهمیدیم آیا امکان اراده معنای حقیقی هم هست؟ بله داداشش اون زمان شمشیر به کمر میبسته تو خیمه زندگی میکرده و پخت و پزشون هم با چوب بوده و خاکسترداشون معنای حقیقی را هم به زیاد مشکلی بگید نداره یعنی به که که آیه خنسا شمشیرش بلنده و بفهمی که تو خیمه هست و خیمهش بلند رئیسه و بفهمیم فهمی خاکستر پشت در خونهش زیاده اینم به فهمی زیاد مشکلی نداره لرسته چون هست ولی این کنایه ها الان در مورد با خودمون ما هم به کار میره یعنی اگر یه کسی بیاد مثلا بنده رو معد کنه در مورد من اینطور کنایات رو بگه بگه فلانی کسی رو ماده یا بگه رفی و رماده یا بگه طویل و در مورد من که به کار ببره تو این قرنی که الان ما هستیم بیاد به کار ببره چی میشه معنای هم مجازیش به ذهن میاد اما معنای حقیقیش دیگه نیست چرا؟ چون دیگه الان کسی که شمشیر بکنه من دیگه کسی تو خیلی نزندگی کسی دیگه پخت و پزش با خاکستر نیست. ببینید موضوع کنایه اجازه نمیده که اون محنایه اصلی رو شما اصلا یک ذره متوجه بشین. موضوعش. بلو خود این کنایات الان به کار میره. مثلا میگه فلانی کسی رو رماد باشد. ما هم کسی رو رماد همونو میفهمیم یعنی جود و کرم داره. اما دیگه نمیتونیم مثل اون که برای برادر خنسا خاکستر رو خونش زیاده تصور خاکستر الان بتونیم بکنیم نمیگیم اونو باید بکنی ها. شما باید ملزم رو نفهمی اون ملاک نیست ولی اگر به ذهنت بیاد اشکالی نداره اما لازم و حتما باید بفهمی اون لازم و نفهمی مثلا اگه یک کسی بگیم این کسی رو یعنی چی میگه خب خاکستر زیاد داره خونش میگه یعنی چی میگی خب خاکستر زیاد داره دیگه آقا میگه بلغ بعدون تو نمیفهمی اصلا یعنی چی وجود باید بفهمید اگر گفتش کسی رو به ماده یعنی جدا کرم زیاد داره میگه بایکلا تو فهمیدی. حالا اگر یه موقع با جو کرم داره بعد گفت یعنی که پخت و پذش زیاد پشت در خونش خاکسترم خیلی فراه تو پذ اونم فهمیدی ئ نیست. اما در مورد من اگر بر کار بره دیگه اون معنای اصلی مد نظر نیست چون الان کسی با خاکستر سر و کار نداریره. حالا بیا توی بحث. پایین توی هاشیه نگاه کنی شطاب المکان یعنی عقام به هی شطاعت که گفتیم دیگه یعنی زمستان در آنجا اقامت کرد. محول قرد محول قرد یعنی چی؟ یعنی المصافت و من شهمت لغوزان الالکتف مسافتی که از نرمه گوش هست تا روی کت. و ازا کاند حاضه المصافت و بعیدتن و اگر این مسافت بلند باشه لازم ان کنل اونقا طویلا لازم میاد که گردن هم بلند باشه فکه انل عربیه پس گویا این شخص عرب بدل عنی ان این نهازه المرعته طویلت الجید به جای اینکه بگه این خانم گردن بلندی دارد گردن فراز است نفه به تعبیر جدید دید کرده به ما با یه تعبیر جدید یه تعبیر جدیدی رو برای ما آورده. یافید و اتصافها ها به حاضر استفاده که اون تعبیر جدید هم همی رو برای اون خانم ثابت بکنه که گردن بلند و مثال ثانی و در مثال دوم درود شد تصفل خنسا آ اخاها توصیف میکنه خنسا دوداشش رو به انهو طویل و نجات، به اینکه این شخص قلاف شمشیر و بلندی داره رفیع العماد اماد ستون خیمه بلندی داره کسی رو نماد خاکستر خونش زیاد. طرید و انتدل به حاضه تراکی ولو انهو شجاع تو اولی عظیمون فی یعنی رئیس فی قومهی نیاست تو دو دومی جوادون کریمون تو سوم فعدلت انت تصریح به حاضه استفاد به طور سریح بگه حقیقی بگه میگه شجاعون رئیسون کریمون اینطوری نگفت عدلت حالا میگیم که نایی باید مزیت داشته باشه مذیعت مزیت خواهیم گفت که چیه میگه فعدلت عنه تصریح به آزه استفاد. از این که بخواد این صفات رو بیان کنه به شکل تصریحی عدول کرده انل اشاره الیه ولکنایه تنها به اینکه به اونها اشاره کنه و کنایه بیاره م? یعنی به طور پوشونده اون مطلب رو گفته انگار مطلب تغییری که محاسبهگر رو تحت یک معنای مستور کرده بنویم کنایه رو در معنای لغتش این صد دیگه انل اشاره الیه ولکنایه لعنهو چرا میگه لعنهو یلزم من طول حملات السیف زیرا لازم میشه از طول همالت و از طول فلاف شمشیر طول و صاحبی بلندی قد صاحبش و یلزم من طول جس و از بلندی طول قامت لازم میاد از شجاعت عادتا یعنی به طور عادی که مردم میگن تو ذهن مردم هست تو ذهن مردم جا افتاده این یعنی قول مشهوره که کسی که بلند قده شجاعتره یعنی هر کیو میبینه قدش بلندتره تو ذهنشون تصوورش حالا ممکنه که این به خود ما عقلی نیست عادی در مقابل عقلیه عقلی انفکاک ناپذیره یعنی یه چیزی باشه که عقلی باشه یعنی نمیشه که این بشه اون نشه عادی یعنی اینکه مردم عادت به این کردن اینطوری ولی ممکنه خلاف هم بشه یه جایی درازی رو ببینید مش بخاری نداشته باشه یه کوتوله ای رو ببینید چه فلفلی بود. این عادتا میگه اینطوریه به خاطر همینم هم که هست که شما رشید بودند رو تو همه فرهنگ ها میبینید معادل با شجاع بودند بکارد. سمه نهوی همه منکونهی رفی عله اماد بعد بیان کرده از این که این شخص رفی عله اماده یعنی ستون خیمه بلندی داره انیکونه لازمه شید می شوند یکون عظیم المکانه یعنی منزلت منزلت بالایی داره رئیس از بیقومهی و عشیدت در قومه کم کما انهو یلزمون کسرت لماد کسرت و حرقل الحتب زیاد سوزندن ایزم کسرت الحرق ثم کسرت و طبق درست شد سمه و زیوف حالا ما گفتیم کسرت الاکلین بعد گفتیم کسرت و زیوف آه سمه کرم اور اسے خورده چند تا درست شو ولما کان کل ترکیب حالا نتیجه میگیریم و چون هر کدوم از این نمونه هایی که ما مثال زدیم رو ببینیم ولما کان کل ترکیب من به سابقته و هی بعیدت محول قلد طویل و نجاد رفیع علمات کثیر الرماد چون هر کدوم از این تراکیب کنیه یا هی ان کنایه شده از یک صفت کنی به انصففت لازممت معنا کنایه شده از هر سفتیم که لازمه ی معناش به انصففت لازممتنده معرا کار و کل و ترکیب من حاضحی و مایش بهحقول کنا انصففت. اینا رو بهش میگن کنایه سفت چرا چون کنی بهی انصففت لازمت به چون اون که لازمه و ما میفهمیمش صفته در اولی شجاعت در دومی ریاست در سومی کرم کرم وجود تو شعر فنسا تو اون محول گرد دور بودن گوشواره لازمش بلند بودن خوب خب منحازهی و ما یشبهو کنایتا کانه کل ترکیب منحاضهی و مایش بخوهو کنایتن ان صفته اینو فهمید حالا بیایم کنایه موصوف کنایه موصوف شما یه چیزی رو ذکر می‌کنید؟ میگید منظورش چیه؟ منظورش اینه که مثلا آقا ازا میگه هر کسی که سیویل داره که پدر نیست منظورش اینه که هر کسی که مرده هر مردی که سیویل داشتن لازمش یعنی مرد بودن درست شد؟ مثال داریم میزنیم ها هم. همین شکله گوش کردید از یه چیزی ما. مثلا تو قرآن میگه که حمله علا ذات الواهن و دوسر نوح رو و قومش رو ما حمل کردیم حملناهم هم ذات الواهن و دوسر ذات علوا یعنی یه چیزی که تختهایی بود و دو یعنی میخ پس میگه ما روی یه مش میخ و تخته اونها رو نجات دادیم منظورش از یه مش میخ و تخته چیه؟ منظورش از یک تعدادی میخ و تخته ما اونها نجات دادیم چی کشتی؟ چون کشتی از میخ و تخته تشکیل شده؟ به جایی که بگه حملناهم علی سفینته بل اون کشتی فرموده حل حملناهم علی ذات علواهن و دوسر یعنی ذات علواهن و دوسر یعنی مثلا میگه که لو لطمتنی ذات و سوارن اگر علنگو به دستی منوسیلی زده بود منظورش از علنگو به دست که اون زنه یعنی لولطمتنی امرعتون می کنای موصوف همین سادگیه گرفتی چی شد پس بنابر این کنای موصوف منظور از موصوف ها یعنی اونی که این صفت رو داره علنگو به دست بودن صفت یه محصوفیه اون محصوف که زنه سویل داشتن صفت یه محصوفیه اون که مرده میخو تخته داشتن کنایه از یک صفتیه اون صفت چیه, چیه محصوفیه اون موصوف چیه کشتیه حالا نگاه کنید بخونم توی مثال های گروه دو اول چهار رو میخونم که یه مدار راحت تر بفهمید بعد سر رو میگه که و قال آخر شاعری گفته از زاربین. یا از زاربین مفعولی عمدهوی مقدره. عمدهو یعنی مرد میکنم. از زاربین به کل ازم عبیز مخزم. ابیظ و مخزم یعنی سیف ابیظ مخزم. ابیظ یعنی سفید، سیغل شده، مخزم سیغ مبالغه یعنی برنده، تیز. چی میگه میگه از زاربین اینها میزنند ضرب زدن با شمشیره میزنند دشمنان را با هر شمشیر سفید تیزی یا شمشیر سیغل شده تیزی با شمشیرهای سیغل شده و تیز دشمنان را میزنند امین درست هیچ و تائنین ضرب زدن با شمشیر طعن زدن با نیزه است تعنه یعنی نیزه زد زربه یعنی شمشیر زد خب. و تا این این اتوده زاربینه و نیزه زنندگانند نیزه زنندگانند کجا رو کجای دشمن رو نیزه میزنند میگه مجامعه ازقان یعنی مجامع ازقان هم مالفنا هم از مجامعه یعنی محل جمع شدن جمع مجمعه یعنی های جمع شدن افغان جمع زغنه یعنی کینه م? پس چی میشه نیزه زنندگانند محله جمع شدن کینه آنها را خب محل جمع شدن کینه کجاست؟ همه میدونید دل. ببینید محلهای جمع شدن کینه ها را با نیزه می درند. یعنی دل های اونها انگار گفته و این قلوب القلوبهم و این القلوب قلوب موصوفه چیزی که هست جمع شدن کینه توش صفته این محل های جمع شدن کینه ها منظور یعنی دل ها اینجا کنایه مبسوطه یعنی خلوب دشمنان نگاه کن سیرو از زاربینا منصوبون به و محذوفن این منم گفتم من از سیف ول مخزم علو وزن الم برد از سیف و از سری الغت بسیار برنده و از جمع و ذقن و قبول این مالی تمام شد چیزی نداشتی که مجامع از یعنی محل جمع شدن که یعنی دلها موصوف بیای بالایی و قال آخر شخصی دیگری گفته فی فضل دار العلوم یه موسسه هست توی دار العلوم فی احیاء لغت العرب درست شد. این به قول خودمون دارالعلوم یه مؤسسه است برای آموزش زبان و ادبیات عربی تو مصر یه نفری اونجا درس خونده بوده بعد اومده در فضل این مؤسسه دارالعلوم این شعر رو گفته رو در فضل مؤسسه دارالعلوم این شعر رو گفت دارالعلوم یه مؤسسه است تو مصر که کارش احیاء لغت عربیه احیاء لغت عربی، یعنی اون لغت اولیه عربی مردیس و اون دوران جاهنی با صحبت میکنند خالص بوده الان خب خیلی به هم دخته شده اون میراس زبانی عرب رو میخواد احیاء کنه در فضیلت این دارال علوم اومده این شعر رو گفته فهمید. پس قال آخر فی فضل دار العلوم فی احیاه در فضیلت این مؤسسه که وظیفش احیاء زبان عربی است این گفت. نگاه کنید معتقدند که عدنان که جد عربه اون عربی فصیح فصیح رو صحبت میکرده که هیچ به قول خودمون اون خلص عربی نزد او بود بعد همینطور اومده اومده اومده, اومده، تا رسیده به جاهلی بعد اومده در دوران اسلامی بعد متقدمی بعد دیگه الان دوران محدثین هستش که من اول تیم براکنین چهارت دوره جاهلی مخضرمی متقدمی و محدثین، مبلدین بهش میگن محدثین میگن دونشو متاخرین میگن این دوره آخر دیگه حجیت ندارن دیگه که تا آخر دارن یعنی زبانشون یه مقدار مخلوط شد. اما لغت امروغه زبانش حجت جاهلیگی مخضرمین اونایی که همه عرب هم جاهلیت دار که همه متقدمین یعنی تا قرن دوم اینه آخر قرن دوم تقریبا اینا قولشون حجت ایشون اومده در این مؤسسه گفته این مؤسسه میخواد زبان عربی رو که به هم ریخته پیدا شده اینو برگردونه به اون میراث قدیمیش ببینیم چی میگه. میگه وجدت فیکه فیکه به که میخوره؟ به این محسسه دارالالوم این محسسه دارالالوم یافته است در تو بنت عدنان بنت عدنان دختر عدنان خب دختر عدنان که الان نیست یعنی بازمانده ادنان یه استحال است بازمانده ادنان الان کیه زبان عربی درست شد مشغل شده نه این به بنای بازمانده ادنان ادنان چند هزار سال قبل زندگی میکرده جد عربه میگه یافته از در تو بنت ادنان دختر ادنان ولی بنت ادنان یعنی بازمانده ادنان بازمانده ادنان کیه؟ بگید بازمانده ادنان کیه؟ کنایه از کیه؟ لغت عربی دیگه اونی که از ادنان مونده الان هست کیه؟ زبان عربی است. یافته از در تو بنت ادنان دارند یک جایگاهی یک منزلی یک مؤسسه‌ای. ذکرت ها که به یاد این بنت ادنان آورده است درست شد به این بازمانده عدنان یادآوری کرده است بداوت علعرابی اون بداوت و خلوص و بدوی بودن و اون میراث اولیه داشتن اعراب رو پس میگه یافته است در تو مؤسسه بازمانده ادنان بازمانده عدنان یعنی زبان عربی جایگاهی یافته است در تو جایگاهی که این ذکرتها صفت این دارند به یاد این بازمانده ادنان یعنی زبان عربی انداخته است اون عربی خالص بدوی رو اون بداوت عرب اون خلوص در زبان عرب که داشتن رو یاد این هم. پس منظور از بن ادنان بگید عبارت است از بگید کنایه از چیه بن طادنان دختر ادنان منظور کنایه چیه کنایه است زبان عربیه م? چون اونچه که باقی مانده از عدنان ما میدانیم لغت عربی پس بن طردنا گفته و منظورش بگید لغت عربیست کنایه از موصوف درست شد کنایه از موصوف زبان عرب. حالا نگاه کنید ببینید میگه و مثال سالس عراد شاعر الشاعر وصف ممدوهی به عنهم در فسال این مثال سهبان وده خودم و فلم مثال سالس سال سه اراد شاعران یقودم این لغت عربی یه ولی به جای لغت عربی گفته چی؟ گفته بازمانده عدنان بازمانده عدنان یعنی زبان عربی چون اون که از عدنان باقی مونده الان تعبیر به هم کرده چون لغت محلنسه بازمانده عدنان الان زبان عربی است این لغت العربیت وجدت فی که زبان عربی یافته است در تو موسسه ایت و مدرسه تو در تو ای مدرسه یافته است مکانند دارند یوزکرها به عهد بداوتها که به او یادآوری میکنه اون دوران بدوی بودن و خالص بودنش به عهد بداوتها فعدل عن تصریح بسیم لغت العربیت ادور کرده از اینکه بگه لغت العربیت نگفته که وجدت فی که اگه گفته بود اینطوری حقیقت می شد وجدت فیکه که الب تو دارد. اگه اینطور گفته بود حقیقت میشد. ولی به جای لغت العربیت تو گفته بازمانده ی ادنان مثل اینکه که به جای این که بگه سفینه گفته بود میخو تخته اگر تو مدررستون مکانن یزکه روها به اهد بداوت ها فعدل عنت تصیف اسم لغ عربی یه تعع ترکیبن ودون کرده ترکیبی که یشی و ها اشاره ای به همین لغت عربی دارد و یاعد و کنایت و کنایه ازو به حساب میاد و قو بهن تو و اون بالت سزبند است در مثال چهارم و فلم ساله را به اد و وصف و شاعر اراده کرده توصیف کنه مملوحین خودش رو به هم یتعنون القلوب به اینکه اینها تعن میکنند نیزه میزنند به دلها وقت الحرب نیزه میزنند به دلها هنگام جنگ فانصرف عن التعبیر بالقلوب منصرف شده از اینکه تعبیر کنه به قلوب الی ما هو عمله و اوقع منصرف شده رفته به سوی چیزی که ماه ما و عمله به چیزی که او خیلی نمکین تره با نمکتره یعنی خوب قول خودمون جذاب تره و اوقع و دلنشینتره بهتر واقع میشه توی نفس و اوقع و, هو و عمله و, و اوقع و فی نفس خیلی دلنشین تره و خیلی نمکین تره در جان شنونده نفس یعنی روح شنونده و خبه مجام و لزغان. و اون اوالت است از محل جمع شدن کینه ها یعنی ما یه سری دشمن داریم قلبشون پر از کینه است. این محل جمع شدن کینه هایی که اونها نسبت به ما دارن و ما با نیزها ها در میبرن میداریم خب این خیلی معناش نمکینتر و باقیتره. بخواه مجامول ازغان. دعنال قلوب توف من ها. زیرا از مجامع ازغان هر کسی بگی محل جمع شدن کینه یا منظور دله. دعنال قلوب توف همه من هون. ازهیه مجتمع الهقده و والحسده و غیره ها. زیرا دلها محل جمع شدن کینه ها و خشمها و بغضها و حسدها و ها و همساله ها. و دلیها و, حسادت ها و نگاه کنید میگه و ایزا تعمل تا حاضین ترکیب این. اگر به این دوتا ترکیب نگاه کنید و هما بنت و عدنان که منظور ان لغت العربیه بود و مجام و که منظور غلوب بود رحی تن و کلن بین هما کنی اویهی ذاتن. میبینید که در هر یک از اینها کنایه شده از یک ذات یعنی یک چیزی که ما به زار خارجی داره کنی اویهی ذاتن لازمتن به معنا ذاتی که لازمه معناشه. آه. لغت عربی لازمه بازمانده ادنانه قلب لازمه محل جمع شدن اینه این به اون دلالت میکنه لازمت لازمت لازمت که کل کلو ترکیب من هما کنایتنن محصوبه و کل کلو ترکیب یماصلهما هما و همچنین هر ترکیبی که همشکل اینها باشه هر ترکیبی که همشکل اینها باشه همینه. اما کنایه نسبت ببینید کنایه نسبت رو من براتون یک تعریفی میکنم شما راحت میتونید کنایه نسبت رو بفهمید هرگاه ما صفتی رو یا مستلزم صفتی رو صفتی را یا چیزی که مستلزم صفت است را بیاوریم و به جای آن که آن را به موصوف نسبت دهیم به یکی از متعلقات موصوف به یکی از متعلقات موصوف نسبت دهید به یکی از متعلقات موصوف نسبت دهید کنایه نسبت تشکیل می شود کنایه نسبت تشکیل می شود پس ببینید ما صفت صفت رو دیگه می دونیم مثل جود کرم نسبت مثل اسم دانش صفت بیاریم به جایی که نسبت بدیم به موصوف موصوف یعنی مثلا زید بگیم زید جریمه زید شجاع زید عالم به جای که اینجوری نسبت بدیم این صفت رو نسبت بدیم به چیزی که متعلق به اوست وابسته به اوست درست شد این تا اینجا داشته گرد. یکی گفتیم صفت مثل شجاعت کرم. ایه. یکی گفتیم چیزی که مستلزم صفته. صفت مثل شجاعت. چیزی که مستلزم صفته مثل شیر. شیر مستلزم صفته دیگه. یعنی شیر لازمش صفته. خب. این هم داشته باشید. خب. حالا نگاه کنید. من یه مثال میزنم. یه مثال دو تا مثال بزنم که فایده می‌کنه خودتون ایران رو از صبح تا شب اگر بگید فلانی مثلا فرض بفرمایید که زید نحو بلد است نحو دانستن رو نسبت دادید به زید گفتی زید نحو می‌داند خب این حقیقت اما اگر اومدید اینطوری گفتید گفتید زید نهو تو مشتشه من اگه به شما بگم فلانی زید نهو تو مشتشه شما چی میفهمید ازش؟ میفهمید زید نهو بلد است ما اینجا نهو رو نسبت دادیم به متعلق زید که مشتشه دستشه تو مشتشه اون کناهی نسبت. نسبت به جایی که به خودش نسبت بدیم نسبت دادیم به متعلقش یعنی مشتش حالا نگاه کنید یه بار میگیم نهوه تو مشتشه اون میشه صفت نسبت دادیم به متعلق موسو یه بار میگه بابا فلانی سیببه تو مشتشه منظور از اینکه که سیببه تو مشتشه یعنی چی؟ یعنی بازم نه تو مشتشه اینجا سیببه مستلزم صفته یعنی نه شد خیلی ما به کار میبریم و. خیلی به کار میبریم ما میان یه صفتی رو مثل نه دانستن یا مستلزم صفتی مثل سیبه به جایی که نسبت بدیم به خود موصوف بگیم نه میداند فلانی نسبت بدیم به متعلق او جزی از او چیزی که وابستهی به او مشتش. شد اینجا میشه کنایه بگید نسبت کنایه نسبت نگاه کنید دوتا مثال زده میگه المجدو یعنی تمام مجد و عظمت مجد و عظمت به طور کل المجدو بین صوبیک بین دو لباس توست چون دوتا لباس میکوشین یکی قسمت زیرین بدن که ازار بهش میگفتن یکی هم قسمت بالای بدن مثل احرام که تو حجم بندن قسمت بالای بدن بهش میگفتن غمیس درست این ازار و غمیس یا اون بالایی سروال همگاهی اوقات میگفتن این دو تا لباس بوده دیگه میگه مجد بین دو لباس روست اینگاه تو میگیم تو بین مشتشه تو مشتشه اگر میخواست حقیقت بگه باید میگوست چی؟ بین مجد سوبک باید میگوست انت مجیدون تو مجیدی انت زو مجدن تو صاحب مجدی میشد در این وقت کنم مجد تو لباس توه کرمو بین بردیک مل و بردیک پرکننده دو برد توه مل یعنی مال پرکننده دو برد توه برد باز یکی برد قسمت پایینه بعد یکی بالا که بهترینش بردای یمانی بوده میگه کرم بین دو برد توست به جای که بگه انتا کریمه حالا اگر به جای کرم بگه ال هاتم ملء بردیک هاتم در دو لباس توست منظور یعنی چی یعنی هاتم تایی منظور یعنی چی یعنی کرم دیگه مستلزم صفت شد حالا نگاه میگه که اما فیلم سال الاخیر فه اینکه عردتا ان تن صبح مجد و من تو خاطبه تو میخوای مجد و کرم رو نسبت بدی به کسی که مورد خطاب فه فعدلت عن نسبته ما الیه مباشرتم او دور کردی که از اینکه نسبت بدی این دوتا رو به توی او به طور مستقیم و نسبته ما الى و هو له اتصال به بلکه نسبت دادی این دو دوتا رو به چیزی که اتصال بهش داره من گفتم متعلقه به او که اصطلاح شد و هوى الصوبان والبردان به عبارت از دو لباس شد دو بردش و يصم ما هاذ مثال و ما به هو كنايه نسبت این مثال و هر چی که شبیه و اینه بهش میگن کنایه نسبت نگاه کنید بالاترین مشخصه کنایه نسبت که بتونید تشخیص بدید اینه که راحت تشخیص از اون تعریف رو که بلد باشید میفهمید ولی از هلو علامت لها زیر کنایه ظاهر علامت برای شناختش اینه ان یوسر و حرفی ها به سفر، این که توش صفت بهش تصریح شده علمجد و حل کرمو توش تصریح شده گفتیم یا صفت تصریح شده یا مستلزم صفت انیوسر و هفیها به صفت کمارا ایتر او به ما یستلزم و یا به چیزی که مستلزم صفت که از من مثال زدم دیگه بودم به جایی که بگیم نه تو مشت فلانیه میگیم زیوبهی تو مشت نیشه خب به ما یستلزم نه و فیسو ویهه اصدون اگه گفته بودیم فی ویهه کرمون در دولباسش کرم است، یا فی صوبیه شجاعتون در دولباس شجاعت است میشود کنایه نسبت از نوع صفت یعنی صفت رو ذکر کرد حالا کنایه نسبت اینجا میگیم فی صوبیه اسدون تو دو لباس شیر خوابیده منظور یعنی شجاعت خوابیده درست شد اینجا مستلزم صفت آوردیم فی صوبیه اسدون فان هاذ المثال کنایه از نسبت شجاعت مصابیه با اینه که بگید فیس و ویه شجاعتون اگر گفته بودید فی و ویه شجاعتون تصریح شده بود به صفت آلا که میگید فیس و ویه اصدون تصریح شده به ما یستر زمان فرقی نمیکنه بگید نه دانستن تو مشتشه میشه صفت آوردیم نسبت دادیم به متعلق موز بگید سیبوی تو مشتشه مستلزم صفت رو آوردیم نسبت به هیچ فرقی ندار حالا یه چیزی رو من توی اون تفسیره بهتون گفتم اگر اونو بلد باشیم که نوشتیدیم بود من گفتم کنایه عبارت از در ذکر ملزوم و اراده لازم با وجود قرینه کاشفه بعد یادتون باشه من گفتم قرینه کاشفه قرینه یکه معنای مجازی رو که معنای لازم هست، معنای کنایه رو به ذهن ما میاره، ولی من مانع از رسیدن معنای حقیقی نیست. مثالم زدیم برات. مانع از رسیدن معنای حقیقی بگید، نیست. مگر اینکه، گفته مگر اینکه چی؟ موضوع کنایه اجازه نده. موضوع کنایه اجازه نده. مانع از جای دیگه باشه مانع از جهده کنایه نباشه مثل اینکه گفتیم که فلان کس از فلان تاریخ تا فلان تاریخ بر تخت نشست یعنی پادشاهی کرد سلطنت کرد ها حالا همین راگه در مورد خداوند به کار بردیم الرحمن علال عرش و استوا دیگه اون معنای نو تخت نشستن نمیشه تصور یا گفتیم ید الله مغلوله بليداه و مبسوطتون دو دست خدا باز دست خدا بسته است کنایه از اینکه عاجز یا تواناست آن کنایه صفته اما در مورد دیگری اگر به کار برده چون دست داره باز و بسته بودن ممکنه مبال به ذهن برسه مشکل نداره اما در مورد خدا امکان نداره حتی یادتون باشه من گفتم مثلا کسی رو الرماد رو اگر در مورد خنساء در مورد داداشش به کار برده اشکال نداره اون موقع میشده معنای حقیقی هم به ذهن برسه چرا؟ چون خاکستر اما الان اگر شما کسی رو, رو در مورد من به کار ببرید در مورد مده کسی که الان هست به کار ببرید دیگه اون معنای خاکستر داشتن و پشت در خونهشون پر خاکستره دیگه فهمیده نمیشه اون معنای اصلی اون معنای ملزوم چرا؟ فقط باید همون معنای مجازیش معنای کنایش به ذهن برسه که عبارت کریم بودن و؟ بخشنده بودن جواد بودن اما معنای حقیقیش بخواد به ذهن برسه معنای اصلیش غلطه چرا چون الان کسی بخت و پس با چوب و تخته نمی بود. این همین رو می این دیکی آخر که من براتون گفتم میگه و از رجعت تا امثلت کنایت از سابقته اگر برگردی به مثال های که در سابق برات گفتیم رأیت تعلم انها ما یه جوز و ارادت و المعنالحقیقی میبینی که خیلی از اونها جایز است درش اراده معنای حقیقی مثل همون بعیدت و محول گفت اما فلان تو بعیدت و محول گفت فلانی محل دادن انگوش گوشوارش دوره. خب باش گوشواره بلندی داره. باش اینو بفهم اما اینکه گوشوارش بلنده منظورش اینه که گردنش بلنده. اونو باید بفهمی اونو حتما باید بفهمی که گردن فراز داره حالا اگر ازش گوشواره بلندم داره مشکلی ما باش نداره میگه و امثلت از ارجاع تا اله از صوابت را ایت ان منها ما يجوز فیه اراده المعنی الحقیقی المذیف هم من صریح جایزه جایز درج اراده معنای حقیقی که فهمیده میشه از صریح لفظ یعنی از اون لفظی که ما به کار بردیم اون معنای حقیقی شما میتونه ازش بفهمید و منها ما لا يجوز فیه زاله و هم نمیشه و ما گفتیم این نمیشه نه به خاطر این است که قرینه نمیگذاره نه کنایه از قرینه شم است بلکه به خاطر موضوع کنایه است که موضوع کنایه به گونه است که اجازه فهم معنای حقیقی را به شما نمیدهند اجازه ای اراده ای معنای حقیقی را به شما نمیدهد. یک نموزج هست که گذاشتم بمونه چون نموزجش هر سه قسم کنایه توش تکرار میشه درس دوباره تکرار میشه و یه هاشیه هم پایین داره که خودش یه تقسیمات جدیدی برای کنایه هست و بحث کنایه رو انشاالله تو جلسه بعدمون با بلاغت کنایه که براتون خواهم گفت الله تموم میکنیم و اون بحث یه دونه ببحث اثر علم بیان در تعدیه معانی که میاد اصلا کلن علم بیان رو که ما کتور کل خوندیم بیان میکنه تا حالا کنایه رو نگاه کنید بحث بسیار زیبایی و جلسه بعدمون بحث کنایه رو من براتون دنبال کنم در تنها هم معید و منصور باشید انشاءالله که آنچه می‌خوانید رو یاد بگیرید و بهش عمل هم بکنید. انتم واسطوا موفق و معید باشید. خدا نگهدار. و السلام علیکم.